یا هم ابرو و حصورت در مورد خانم ها گرفتن ابرو، باری کردن ابرو قطعا حرام است لعنت آمده لعنت آمده است که لعن الله النامسات والمتنامسات که لعنت کرده کسانی که موهار می حالا بعضی گفتن که اما جماعت بزرگی از علماء و شرا حدیث می گویند که این عنموی صورتی که موهای موحای پرزمانان دیست که پرزهای سرخ اونها رو کنده اون نمس در لغت نمس اون پرزهای صورت سرخ هم دیده نمیشن هیچ دیده نمیشه اما خانومی نخ میزنه اینها نخ نخصدن هم لعنت اومده در لغت نمس نامسات و المتنمسات اومده نمس همی موهای سرخ دیده نمیشن اما اگر خانم سبیل بیرون کرد یا ریش بیرون کرد اینها رو برداشتن فقط سبيل ریش اما سبیل نیست ریش نیست و مو هم ظاهر نمیشه اما هر روز نخ این لعنت آمده چون اون رونق صورتش گرفته میشه و لفظ نام صاحب و المتنام میصادر حدیث شده هایی که میگن فقط یه چند نفر گفتن که آرو اما اکثر محدثین و شرح حدیث میگن که یعنی اون نخ روی صورت حرام هست زیرا که رونق میگیره چون خود نفس میگه موهای سرخ رنگ بیرنگ بیرن رسول اونها رو گرفتن اگر آوروی خانم خیلی کلوفت بود که باعث تنافر همسر سرمی شده شنین آوروی رو هم به حد معمولی آوردن نکه باری حالا آورو بالا باشه پایین باشه سمت راست باشه سمت چپ باشه شرق باشه غیر باشه حرامن بعضی از این خانم مقتبی که خودشون ماشاءالله اصلاح اللہ میگن از بالا گناه نیست، از پایین گناهه بعضی میگه از پاهین گناهنه از بالا گناهه از بالا هم گناهه از پاهین هم گناهه راست هم گناهه چپ هم گناهه لعنت آمده در هیچ هدیثی راست و چپ بالاپایین نهآمده این که لعنت آمده است